بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از موضوعاتی که از سابق سرازو مشکلات پیدا شده و زیادتر بعضی از دوستا متاسفانه بیشتری کسا دیگه قسمت گمراه هم شدند موضوع صفات الله جل, جل جلوه است. در صفات خداوند خداونجالجالوه اختلافات زیادی رونما نما شدن این اختلافات علتش چی بودن و چرا زیاد است و حتی بعضی از فرقه ها و مذاهب یکی خدا به کفر متهم ساختند و راه بیرون رفت در مجموع برای کلگی چی هست اصلا در مسائل اعتقادی اگر ما می خواهیم که عقیده درست داشته باشیم و در مسائل بلخصوص صفات الله جل جلهو انسان باید یک نقطه را درک بکنه که و خوده قناعت بده د این نقطه که هیچ کس نمی صفات الله جل جلهو نسبت به خود الله جل جلوهو بهتر بشناسه مثلا مه درباره یک کسی مثال برتان میگم مثلا مه درباره قاری صاحب استاد امان الله خان نظریاتی دارم یک کسی میایه بر من میگه که استاد شما صفات استاد امان الله را برما تشریح بکنیم وقتی ما میخواییم برمد راه هست ما میخوایم که است. استاد الله را مطابق دید خود صفات شده معرفی بکنم میگم که والا این قاری صاحب که هست. یکی از صفاتشی است که چای تل خذیات خوش داره خب دیگه صفاتشی است که شب و درست خوشش نمه دیگه صفاتشی است که مثلا میخواهی که در رمضان یک مسابقه قرآن بده دیگه صفاتشی است که مثلا من از خود صفات کرده میرم کرده گفته میرم وقتی که پیش قاری صاحب میگه استادی چی گفتی؟ من چی صفاتی که تو گفتی؟ نه چای تل خوشیم بیه نه خوه سی که گفتی نشتکه در کتابت خوشیم بیه چون این صفاته برای من روشتا خیلی میگم قاری صاحب رای حل چیست رای حل درست میگم برادر ما صفات خدا در یک کتاب تشریع کردیم قلمت بگی که کاغذت قاقضیت از پیش خودم بشی خب قاری صاحب چی صفات داری والا چه این یک دارم یکی ای از صفت چی صفت که من میخوایم که در هر ماه عدیقل یک پینجا رفر شاگرد خدا پینجا پینجا آیت قرآن برشان حفظ کنم دیگه چی صفت داری؟ صفت ما یه ای که ما میخوایم که عدیقل سالانه یک دو ست نفر هست تجوید قرآن درست بودم اینال وقت ما تو در قسمت یک مخلوق نمیتانیم که تخمینی صحبت بکنیم پس آیا حق داریم در مقابل ذات خدای عزا و جل از دل خود تخمینی صحبت بکنیم؟ صحابی کرام چرا هدایت شدند؟ چرا خداوند در مقابل صحابی پیغمبر گفت که رضی الله عنهم و رضوعن؟ چرا راضی شد خداوند از اونا و اونا از خدا راضی بودن؟ خاطر ازی که اونا تمسکشان به حبل الله المتین که قرآن عظیم و شان است خلاص ما میخوایم الله جل جلاله رو بشناسیم پس به قرآن رجوع میکنیم که چه قسم خدا صفت کرده. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ما نمیتونیم صناعی خداوند بگوییم که مثل که خود خداوند اثنهی تعالی نفسی وقتی که خود خداوند متعال صفت خدا، عظمت خدا، قوت خدا، جبروت خدا، رحمت خدا در قرآن دیموشان بیان کردن پس ما فقط باید من حیث مکتب و نبوت چیزی که قرآن گفته و چیزی که رسول کریم اسلام تشریح کرده اونمو رو یاد بگیریم چرا که پیغمبر سلام گفته که ما برای شما دو چیز ترک کردیم کتاب الله و سنتی، کتاب خدا را و سنت بنا. تا وقتی که مسلمان ها در قرون اولی خیل قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ame قرون سلاسی که قرنهای درست و مثبت و اشخاص از اونا اشخاص با ایمان و متدین بودند اونمون قرن هایی بودند که مردم تمسک داشتن به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ده چوق وقت سقوط کردند در کل نواهی زندگی ها اسلام در اوج بود مثل یک بحر بیکران در حرکت است مدینه منوره حرکت کرد اله به شام آمد اله کشورهای شام مسلمان شد اله عراق مسلمان شد اله آمد طرف فارس اله امپراتوری فارس خود دادن اله در دا افغانستان مسلمان شد اله بلاخره آهیس آیسا. آه تا وقتی که مسلمان ها قوات داشتن اسلام امود رفته میرفت و برای هر کسی که وقتی عقیده اسلامی را مطابق قرآن و سنت تشریح میکردی هیچ کسی شک پیدا هیچ کسی مشکل نداشت. امروز خب. چی مشکل پیدا شد که عقید خرابی پیدا کرد؟ این دو چیز داخل شد فلسفه از یونان داخل شد فلسفه یونان آمد داخل شد در کل چیز داخل شد در کل چیز داخل شد در کل علوم داخل شد اینمی تمدن که امروز تمدن علمی که امروز مادی هست اینمی تمدن مادی که امروز در اروپا ایجاد شد این میره مسلمان ها هفت قرن پیش به این رسیدن اما نزدیک بود به این تمدن برسره چی مشکل برشون پیدا شد که وقتی که مسلمان ها عالم پیدا کردن طبیب بزرگترین طبیب طبیب مسلمان بزرگترین دانشمند دانشمند مسلمان بزرگترین اقتصاددان اقتصاد اسلامی همه چیز بود ولی مشکل چه پیدا شد مشکل دای پیدا شد که فلسفه یونان داخل شد در کشورهای اسلامی عالم ها اشتباه کردن فلسفه را در هر چیز داخل کردن ما نمیگیم که فلسفه چیز بد است من تعصب ندارم در مقابل فلسفه لکن برادر فلسفه اگر فلسفه عقلگراه هاست یا حسگراه هاست یا علمگراه هاست به نهان فلسفه های از اونها رو یک مزمون بخوان لکن امی یک مضمون رو در کلی چیز داخل کن خراب کت مسلمان رو فلسفه داخل شد چی در عقیده ایواز که ما عقیده قرآنی بخوانیم عقیده چی میخوانیم؟ فلسفی نشت از اعتقادی مسلمان ها عقاید اسلامی صفحه اول چه می‌کنیم، میکنیم امرو صحبه که برما کسی کتاب ور، باز میکن اسلامی. چقه آلیست می کانت فرانسیس بیکن، اتو میگ کانت اتو جان جاکروسو اتو میگه سارتر اتو میگه او خدا خانه خراب کنه آلا در سر ازیغتونو شکردی عقیده اسلامی آلا در قرآن عقیده اسلامی نبود که نوشته از قرآن بلاخره ما ما نام عقیده اسلامی از فلسفه ارسطو صحبت میکنیم از دیکارت صحبت میکنیم از فرانسیس بیکن صحبت میکنیم از سارتر صحبت میکنیم از انشتاین صحبت میکنیم از فا... درست است ما که اونها عالم نبودن دانشمند نبودن اونها چیز نداشتن لکن مشکل اساسی ما در چیست این حاله اینمی انسان در, ا... در علوم اعتقادی داخل کردیم فلسفه و در سنف دوازده مکتب بیختم معلم صاحب دیگه قرار استاد است صفات خدا نه عین ذات است و نه غیر ذات نه خودش میفهمه نه شاگردش میفهمه بیا بچه های سنف دوازده رو بگم میگه کدام تان فاهمیده بیا معلم های سنف دوازده رو بگم میگفت برمتش روی کن برمات دست تلفن میه استاد همی عین ذات و غیر ذات چی من معلم فلانی مکتب هستم خب من این رو فاهمیده بر شاگرد ها چه قسم خبرش بوک برادر گلهس که, گل. که مثلی هیچ شی خداون گفت که مثل خداوند هیچ چیز نیست یک وقت برای ما صفات یک کس دست میداد میگه برادر یکی جوهر است و یکی عرز است خب فهمیدم جوهر چیست جوهر قائمون به ذات است خب قائمون به ذات چیست ما خرابی نمیفاین برای ما فارسی دست میدی کلمات فارسی استعمال کن خوش خوشحالم که اگر کس یک چهار کلمه انگلیسی یاد بگیره افغان ها دیگه نه متترسند عادتشان چهار کلمه انگلیسی رو یاد گرفت ها? امی موضوع رو شما سیو کنین کامپیوتر یاد نداره نه دیگه بیچاره کلمه را از کامپیوتر یاد گرفت که سیو کردن باز دوگه. دوگه. امی گفت تو استاد امی موضوع رو با شما سیو کنین گفتم خب سیف کردم اینی چیزی کردم تا پیست کنین خیر پیست می که لاپ تاپ بگیره چیز میگه امی اک پیست کو کلمه انگلیسی و دیگه یک یک چهار کلمه عربی سوالتوخ عربی دست نمیدی، خالتوخ فارسی دست میده. ببین قایمون به ذات به غیر فلانی گپا رو ما چی بفهمم؟ من گفتم مثلا مردم هستیم، سمسمه بر ما بگو یعنی چی جوهر چیز؟ جوهر به ذات است. قایمون به ذات چی معنی؟ یعنی وجود مستقل داره. خو یعنی طول عزت اقامت است. طول اینی خلاص. و عارض چی است؟ قایمون به نداره اگه دا در اینجا گرفتی اینجا میخلاص اینی عرز شد رنگ. خب این چی شد اینه به صفات الله چی مانه قائمین بزاد قائمین بغیر خب بعد نیز از خانه پرپلو الان تو خمانه اخیده اسلامی رو صفات خداوند درست میدین نه خیلی چی شد نه خداوند جوهرست نه عرزست او برادر چرا در صفات الله جل جلاله هو صفات مخلوق داخل میگنی از خدا بترس. ای جوهر و عرز و قائم به و قائم به غیر و ایگفاره که تو برای میخوای که تشریع کنی. این مسائل است که صفات مخلوق است. و اونجا قرآن میگه که ک مثلیهی شی، هیچ چیز مشابه و مثل الله جلاله جلالهو جل نیست. بنار هر چیزی که تو تصور میکنی در چشمت که قایدی اساسی علمای عقاید میگن هر چیزی که در تو میگه که خداوند ای قسم باشه بفهم که خداوند غیر از او است بخاطر از که تو به عواص پنجگانه فکر میکنی به عقل فکر میکنی چیز رو که دیدی و خداوند متعال جل جلو رو نمیتونی تحت تأثیر حواس خود بیاری ایناله فلسفه از یک طرف آمد در هر چیز داخل شد در دا نحوام در هم فلسفه داخل شد ایواز که ما در افغانستان گرامر عربی ره گرامر بخوانیم، بخانیم اعراب بخانیم، ترکیب بخوانیم. ده سال یک نفر نحوه میخانه فایل چرا مرفوز فلسفیز دیگه فلسفه میگه بلا بالا پس شنز دیگه مرفوز بسیاری کسا کورس انگلیسی که میخانه وینزده ویجزنده نشت همشک دی هم زیاد میشه رسانه پرسان گویمو یکمی چرا هست؟ مگرمتون نشتکل انگریزان نشتکل پردو گفت یا پشت گفت نگرد؟ یاد بگی خواهد؟ یعنی میسپیلش هست؟ یاد از ما میگه فاعل مرفو است خب چرا فاعل مرفو بود؟ چرا مفعول منصوب است؟ چرا مضافله هی مجرور است؟ ای نصب رفتین در فلسفه نحوه فرامور شد ده سال نحوه میخوانه یک رقی مریضی نشتکل سال. داخل شد فلسفه و منطق فلان و فلان داخل شد در علوم اسلامی اگر گفتی فان فا این قیله قلتو فا این قلتا قلتو فا این از قال قیله مدرسه میگه دلم بیسید جزید. این حال ما میخواییم صفات الله جلال جلال بره بفانیم فلسفه داخل شد احضی از اندوستان انزواگیرایی و گوشنیشینی و ترک دنیا و ملانگیزم داخل شد روزی که ملنگی در اسلام داخل شد گلم اسلام جمع شد ما صاحب در خوج انصار ولی خود چی کردی خوج انصار ولی صاحب قرار ترک دنیا کردیم از پیروای خوج انصار از, از چی هستم از تمیم انصار و جابر انصار هستم خو خو با چی شد نمی‌شه ولم اونم اونجوری دیگه ترک دنیا که ما رفتم سایه تو از پیرو واسه این نفر هستی هم اینجاست امی که که شاهدای از است پیرو وسی هست نیستی دروغ میگی. چی دروغ گفتیم گفتم بیا سایه ما بر دروغ تا بگوییم که تو پیروش نیستی یک دروغ هستی اگر امی جابر انصار طمیم انصاره که ما تو برش این قسمی اعتقاد داریم و دروغ خود پیرووزو می‌دانیم آیا از بود یک مولوی صاحب پرسان که بگو مولایی یک رکات نماز خواندن در بیت الله شریف چند چقدر ثواب داره؟ یک رکات نماز خواندن در مسجد نبوی در مدینه منوره چقدر ثواب داره؟ اگر گفتم او مثل تواره می بود قرار در پالوی قبر پیغمبر اونجا قرار تکیه می زد نماز خود در مزید نبوی می خان می فالله و خدای من رب کل مردم افغانستان و جهنم سایست؟ اما او که آمد در افغانستان نمازای را در بیت الله ترک کرد نمازای را در مسجد نبوی ترک کرد کنتم خیر امتی نه بود که اخرجت ناز شما بهترین مردم هستین بهترین امتا هستین به خاطر چی به خاطر که ترک دنیا میکنید یا به خاطر ازی که اخرجت للناس گفته گفته که شما بر مردم برآمدین این حال او جابر انصار و تمیمی انصار و شاید شمشری که ما خاطر از اونا بغمه کنیم تو نیستی پیروی از او او اگر مثل تو و رنده قرار داره می جده پالوی باید شریف قرار سر خود از سر کعبه ابا خورپش مند می اوزان که میداد اوزان من خلاص ترک دنیا میکرد او آمد در افغانستان اینجا جهاد کرد اینجا مردم اینا را شهید ساختن امی بابا کلان بود پرست ماوتور شهید ساخت ماوتو نواسای پرست پرستاست ماوتو نواسای آتش پرستاست اون کلان ما بت بود بامیان بود بت بود بامیان که تا این ده سال از تابال فاتیایش خلاص نمیشه او به خاطر از که ما شماورا خوش داریم اینا ال خوند مردم بدیم از خیرات سر اونم عمر بود خیرات سر اونم و عثمان بود از خیرات سر اینمی جابر انصار و تمیم انصار و اینمی مردم بود که خون خدا در راه اسلام ریختاندند که امروز ما تو مسلمان هستیم ایناله اگر جابر انصار و تمیمی انصار اونجا خودش نماز میخوان با ختم زندگیش ثوابش ختم میشد امروز هر کسی که در افغانستان میگه لا اله الا الله محمد و رسول الله ثوابش برکی که میرسد باونم او جابر انصار میرسد او جابر انصاری که نه خاطر تو ترک دنیا کرده بود او جابر انصاری که ترک کرد شخص خوده فایده خوده گفنیم من باید برای مردم اسلام برسانم تو کی که پی عدیقل در اون پیش قبر از اون که هستی؟ عدیقل یک که عقل تا در کار بر خداوند بر ما که چرا تتفکرون افلا یا تدبرون القرآن چرا در قرآن تدبر نمی آیا آید قلب هایتان کلف است چرا عقلتونا در کار نایم پردین چرا فکر فکرتونا در کار نمیپردین از عقل در مقابل قرآن تفکر و تدبر بکنیم باز بعدو زو ببینید که امی واقعیت هست یا نس ترسم نرسيبه که به ای اعرابی این نه رح... که تو میروی به ترکستان است یک کاگورگ سر خر سوار است کجا میره طرف مزار شریف در حرکت داره اونجا ترکستان سابق منطقه شمال میگفتن اون آذربایجان طرف ترکیه و طرف اه... چی ترکمنستان اینجا صاحب روان است گفت ترسم نرست کجا میره حج میرم ای خورای حج نیست ای خورای حج نیست اخوای اسلام نیست که تو گرفتی اما نفره که تو رهبرت قرار میدی اما از تو متنفر است. رهبرت وطن خدا بیت الله شریف ترک کرد و تو میگی که اینمی می جابر انصار و تمیم انصار را من خوش دارم. جابر انصار و تمیم انصار نمازهای خوانده در نمازها را بیت الله الحرام ترک کردند. در مدینه منوره در مسجد النبوی ترک کردند. آمدند تا که دین اسلام بر برای مردم افغانستان برسانند. تو خون ادیه شخص چرا آمد امیقا، امیقا سوال خو از پیش خود بکن ما وقتی که سر صفات الله جل جلوه صحبت میکنیم اینه مشکل پیدا شد که ما ایوازید که قرآن باز میکنیم، ماز قرآن پوست را برداشتیم مغز را با دیگران بگذاشتیم ما پوست قرآن شریف هد. او شیره شاید شما بگیم سا شیره غلط میکنم. کنم من غلط نمی کنم من در شیر نوآوری می کنم او که می گفت که ما از قرآن مغز را برداشتیم پوست را با دیگران بگذاشتیم او تاریخ تیر شد او تاریخ تیر شد آره تاریخ معاصری ایشیری قسم است که مازه قرآن پوس را برداشتیم کتک که کت آدما که بسیار دیندار است قرآن شریف آیه الکرسی در گردن قندان داخت ما آیه الکرسی انداخ خوب نام خدا خوب دیندار از قرآن اسم الله جور کردیم در گردن خانم خود انداخ تیم باز خانمش چو وجود در تشناب میره وجودا تشناب کته اسم الله داخل میشه به ازتی در مقابل ذات الله جل جلاله است اینمی پوست بودن قرآن است ما قرآن شریف را در چیز مزار شریف در دیگاه سایب نشتر کردیم آیت الکرسی از زیر از دیگ سایب هر کس که تیر شد خوب مسلمان است خب پشک تیر شد مرغ تیر شد عجقل معقولیت موالا صاحب خلاص شریف در دیوالانو شکردیم در چتانو شکردیم در دیوالای خانهو شکردیم بسیار خوب مسلمانی میامیز که آیتول کرسی را در دیوال خانه خود نصب کردیم خلاص قرآن خوب یک خطات خوب خطاطی کرده یک نفر صاحب هنرمند ده زندگی خود نماز نمیخوره و خیسه در آیتول کرسی را خوب شکرد دیگر نفر صاحب از بسم الله الرحمن الرحیم جور کرد دیگر صاحب بسم الله الرحمن الرحیم جور کرد قرآن در زمین ما قرآن شریف را تا در زیارت ماندی ما قرآن شریف پوشت پوش کردیم بودگیش میش شا شام پاریس میکنه بودگیش میگ گاجبخمل میکنه روزی یک یک دانا قرآن شریف در زیارت رفتم که قرآن شریف بخونم میگه قرآن شریف مانگیس رفتم باش همین آدم طلاوت کنه تا که پوشش خلاص کنم نیم ساعت داشتیم تا پوشایزو رو کنیم نیم ساعت طول کشید پس ما خلاص <تصفح> <تصفح> قرآن اخو میخوایم که در زمان پیغمبر صلام علیه شریف در, پو، در پوست بزن شده بود در پوست گوسفند نشه شده بود در دو تا های تختن شده بود ولی که او وقتی قران شریف را پوش میکردم من فکر میگام که اقتصاد صابی گویا قران میکرد کردن پوست بزن باز یک 50 تا پوش بکنه در خانه بی بی حفصه اون یک قران شریف تقریبا خراب مونده بود خلاص از او استفاده میکرد. قرآن در قلبهایشان بود در شخصیتشون بود در حرکتشون بود در نشستشان بود اینال اینمی قسم وقتی که حرکت صوفیزم و حرکت ترک دنیا و ایگفارم مسلمان ها از هندوها گرفتن داخل عقیده خود کردن و از اون طرف فلسفه داخل شدتن کل عقیده و کل چیز اینست در زیر پرشت شعزی خلاص من مسلمان قرآن میخوانم قرآن مگ قرآن میگه که بگو که خدای برای من نیکیهای های دنیا رو بده خوبی های دنیا رو نصیب کن و فی الاخرته حسنه و نیکی های اخرته بده اون یه قرآن میخوانم؟ قرآن می قرآن کس یادم دیگه چی هست ده نماز که ربنا آتنا فی حسن خب دنیا حسنه خب آلماناش در دنیا حسنه های چی مانه نیست ترک دنیا خیبو که ربنا لا تو آتینا فی الدنیا ایشای. ایش ای هیچ خدایی برما در دنیا چیز نه تی ها؟ چیز نه خلاص منو قرار در یک بغل کو خرفش خواه اما اونجا میگه ربنا تو آتینا فی الدنیا حسن چی چی شد؟ این دو مشکل پیدا شد اینال که این دو اندیشه را از کلی دور نکنی قرآنش رو نمیتونی صفات الله را ام نمیشنست صفات الله جل جلاله رو امن نمیشناسیم. برن ما صفات الله جل جلاله رو چه قسم باید بشناسیم بالا ما میگن که ما صفات الله جل جلاله رو میشناسیم با اساس چهار قایده بدون تشبیه تمثیل تعطیل تعویل نه تشبیه میکنیم نه تمثیل میکنیم نه تعطیل میکنیم و نه تعویل خب ایمان داریم به قرآن و قرآن از این صحیح ایمان داریم هر صفتی که الله جل جلاله بر خود گفته به اون صفتی الله جل جلاله ایمان داریم گفته عالم است ایمان داریم الله جل جله عالم است گفته که رحمان است ایمان داریم که الله جل جلاله ذات مهربان است گفته که الله جل جلاله سمیه آن بسیر است ایمان داریم به سمع و به بسر الله جل جلوه به سمیه بودن و به بسیر بودن الله جل جلوه ایمان داریم هر صفتی رو که الله جل, جل جلوه برای خود نسبت داده و گفته در قرآن عظیمشان به او ایمان داریم انال این صفت ها را تشبیه نمی کنیم اول قاعده چی است؟ تشبیه نمی عالم هست؟ بله آیا علمش مثل علم موارست اگر گفتی علم فلانی موارست تشبیه شد تشبیه شرکست در صفا بگیم الله است نه مثل علم مواره چه قسم علم مواره نیست علم من ناقص است من یک کتاب ها می کتاب دیگر که نو دیدم یاد ندارم علم ما ضرورت به وسائل دارد. علم ما در یک تخصص خاص است علم ما محصور از علم ما ابتدا داره علم ما انتها داره علم ما کم میشه علم ما زیاد میشه علم ما نقص داره علم ما, علم ما غل... علامت استفهام در علم ما هست بنابراین ما علم الله جل جلوه را با علم انسان تشبیه نمیکنیم. که ولا علم فلانی مثلا علم ترباف علم فلانی ولا علم قارس بمان الله است مثل علم میاخیل سه تشبیه در بین دو مخلوق درست است والا علم تو در زبان شناسی مثل علم فلای نفر تشبیه آمد اما وقتی که در ذات الله جل جلو آمدی در علم الله جل جلو آمدی برش میگم که عالم الغیب و الشهاده خلاص الله جل جله عالم غیب و شر. چیزی که در قلب توست او هم می‌فهمه چیزی که آشکار است او را هم میفهم بناً آیا علم حضرت محمد است آیا علم صحابه کرام آیا علم ملائکه ها آیا علم اولیاء الله آیا علم علما کدام شباهت با علم الله داره میگیم نه علم ما علم مخلوق است بنان علم مخلوق با علم خالق فرق داره از ای خاطر حق تشبیه در صفات الله جل جلو نداره اگر کس تشبیه میکنه تشبیه میکنه اگر یک کس بگه که الله جل جلاله اینژینیر است شرک در صفات الله اینژینیر یک اینژینیر بودن صفت یک مخلوق است ما حق نداریم که الله جل جلاله رو بگیم اینژینیر است یا بگیم هنرمند است یا بگیم داکتر است صفات مخلوق با الله جل جلاله باید نته اگر دادیم تشبیه پیدا شد بین گی بین خالق و مخلوق و تشبیه پیدا کردن بین خالق و مخلوق می خودش شرک در صفات است بنان ما میگیم ما چی بگویم ما چی که بگوییم قرآن و سنت بر ما میگه که شما هر صفتی صفت توقیفی است الله صفاتی رو که برای خود بیان کرده فقط سرزمون توقف کن توقیفی جیمانه یعنی استاب استاتو از دل خود صفت جور نکن اگر خداوند گفته که رحمان است تو حق نداره که راحم بگویی اگر گفته غفار غافر هم گفته درست است اما وقتی گفته ستار تو نمیتونی بگی ستار سیخی مبالغه است، من باید ساتر بگویم میاد ساتر نه تو حق نداری جور کنی آلا ما میگه توقیفیست وقتی که در قرآن و سنت کدام صفت به الله جل جلو گفته شده چون الله را کی خوبتر میشناسه خود الله و بعد از الله رسول الله بنا چیزی که الله گفته و رسولش گفته در صفات او رو میپذیریم دیگه کسایی که دیگه صفات ها رو جور میکنن این صفات ها کلش باطل است و این صفات ما با الله جل جلاله گفتن نمیتونیم چون بسیاری کسا با تصور خود مجردی که یک کلمه را در صفات الله داخل کردی تشبیه به مخلوقش کرده و تشبیه به مخلوق علم خودش از دایره توحید برآمده است تمثیل نمیکنیم بلا تشبیه، ولا تمثیل، ولا تعطیلن ولا تعویل چهار قاعده است وقتی که تشبیه نکردیم حال تمثیل نمی کنیم. برای یک کس برای شاگرد خود گفته نمیتونیم که ما استاد استم صفات خداوند می آ آبچه رحمت خداوند مثل رحمت مادرت است بخوان کلمه که خراب شدی استاد تمثیل نکو تمثیل ما دا دیگه مسائل مثل گفته میتونیم میگیم که چشمای فلانی شخص که است مثل چشمای فلانی شخص است دست فلانی شخص مثل دست فلانی شخص است. اما وقتی که ما سری یاد الله میاییم یاد خداون یاد الله فوق ایدیم باید تمثیل نمیکنیم که دست خداوند العیاذ بالله مثل دست انسان آرست. اگر گفتی چی آمد تمسیل و تمثيل در صفات شرک یاد الله فوق عبادهم آمنا و سلمنا اما چه قسم است کیفیاتش تمثيل کرده نمیتونیم که بگوییم کیف الرحمن علی العرش استوا استوا ایمان داریم به استوای الله جل جلاله علی العرش آیت قرآن است به آیت ایمان داریم کیف چی گونه؟ اگر گفتیم چی گونه تمثیل آمد. چه قسم؟ چه قسم؟ مولای چه قسم؟ آه خانه پرپلاو. چه قسم نگو؟ کمایلیق جلال و به شعنیهی اونمو قسمو به شان الله جلاله زیب داره. ما مثل گفتنم میتنیم. بناهن. کل این حال کن الا وجه. اینا صفاتی که الله جلال جلال مثل برش نگوین برادرای عزیز اگر سر چگونگیش آمد ما وقتی که در سر قاری صاحب گپ میزنم میگم قاری صاحب چشمش مگه چی گونه است میگم ما اینی قسم قسمت دستاش یعنی قسمت قلمم میگیرم یعنی باج برتر رسم میکشم من تو بینی گوشش اینی قسمت است کردم یا یک نفر دیگه برد میرم میگه ما بله قاری صاحب کس چریش مثل اون استاد چشمایش مثل این چشمای از قدشوها می نمی کس تمثیل. بین دو نفر مماثلت آوردیم مثل آوردیم بخاطر تور خوب درک بکنیم. اما در صفات الله جل جلال جلاله قاعده است که لا مثلوه تمثیل نمی نمیکنیم اگر کس تمثیل کرد در اینجا الله جل جلال جلاله را با یک مخلوق مماثلت داد همرنگی داد و مثل فکر کردن الله جلالهو جل با یک مخلوق اینوی خودش شرکست و ناروا است بناهن تمثیل چی مانا؟ یعنی مثل گفتن مثلا هر چیز که میگید ما شما میگید مثل فلانی خربوزی افغانستان مثل خربوزی اندونیزیاست سیب افغانستان مثل سیب است. در چیز میگید مثل مثل مثل اما وقتی که در صفات الله جلهو جل آمدی بنا ما مثل گفتن نمیتونیم چون الله جل جلاله یگانه هست بنا هیچ کس مثل الله نیست او خالق است ما مخلوق هستیم بنا کل چیزایی که ما میبینیم این مخلوق است ما هیچ هم مثل الله گفته نمیتونیم و هیچ وقت الله را مثل کلا مخلوق گفته نمیتونیم بنا ما مثل مثل در ذات الله جل جلاله بند است چیگونه؟ نی بنا اگر یک کسه تصور میکنه که فلانگی چطور است میگه کیف از این خطر عربا میگه بدون تکیف ما کیفیت شد. گفته نمیگم چی گناه چی قسم؟ این که ما در صفات الله جللا جللهو بیان کرده نمیتونم. میگم که ما ایمان داریم با صفات الله جللا جللهو با آن مشکلی که در قرآن هزیم شنا میدارد و با مشکلی که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده بدون از این که ما قرار تشخیص بکنیم و یا تامسیل بکنیم بسیم. سومی شعر در صفات الله جللا جللهو یاست که تعطیل باید نکنیم. بعضی کسا برام معطله در تاریخ یاد میشن که بعضی صفات انکار میکردن. قرآن گفته میگه نه ولی این صفاتم ما گفتن نمیتونم. اگر بگویم که دو میشه، اگر نگویم که دو میشه، تعطیل میکنیم بعضی صفات الله جل جلاله جل از این خاطر ما صفات هیچ کدومش تعطیل نمیکنیم. چیزی که در قرآن شریف و در سنت آمده با او ایمان داریم و تسلیم هستیم. بدون که ما بگیم نه ولی این صفات چه ما میکشیم. تو چیکار هستی چه این نامش ن والا ایده من نمیگم نی والا من ایده که او برادر, او برادر. قرآن که گفتم خلاص الله جل جلاله گفته که هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس المؤمن المهیمن العزيز الغفار الصمد همین صفاتی که آمده خلاص اینی صفات ما با بابا ایمان داریم چهارمین نقطش تعویل است. تعویل چی مانا؟ بعضی کساس بعضی, بعضی از صفات تعویل میکنن. نه والا من منظور ما میخوایم که بگویم که یت چی میگن؟ ما یت ید تعویل میکنیم که قدرت است. خب، کان تا با. چرا؟ والا اینج مؤولا میگن تعویل میکنن. خوب وقتی گفتی که یاد الله فوق عیدی گفت قدرت الله بالای قدرت های از درست است خیبه یایت دیگر برمو خیلی ترجمه وقتی گفتی سیست من یک قاعده را قبول دارم بل یداهو مبسوطتان یداهو دو ید اینال بازی جا مجبور استی که دو قدرت خدا چی شد؟ <تص> خرابی کردی نکردی بل یداهو ها... الان وقتی که اینجا که قدرت پس اینجا دو قدرت مجبورست مجبورست مجبور است که بجا یدا قدرت میگی اینجا هم باید یادانی نه قدرتانی بگی از این خاطر علما میگن که نه تعویل نمیکنیم الله جل جلو صفات را که بر خود بیان کرده ایمان داریم اما کیفیتش از امام مالک پرسان کردن که استوا گفت الاستوا معلوم اونا آیت قرآن است استوا معلوم و و مجهول کیفیت چیست؟ معلوم مجهول است نه ایفانی و الیمان واجب ایمان آوردن به چیست؟ ایمان داریم چون در قرآن آمده و عنه بدع ای که تو سؤال از کیفیت و چگونگیش میکنی؟ این یعنی یک امر بدعت است، گپ غلط است. چون ذات الله جل جلاله از کیفیت و از چگونگی و از چه قسمی و چه شکلی و این گپا سوال‌ها به الله جل جلاله نسبت دادن نیست بخاطر خاطر از اینکه ما وقتی که در بین انسان ها می‌کنیم، خب مثل یک انسان انسان دیگه وجود داره، مثل یک حیوان هیو... حیوان دیگه وجود داره، مثل یک نبات نبات دیگه وجود داره، در حشره شناسی مثل یک حشره عاشق حشر دیگه وار وجود داره که ویسی دیم خان اما در ذات الله جل جلهو بر ما گفته که لا میلد و لا میولد و لا میکله احد. ما در صفات الله جل جلهو چیزهایی که مربوط به است ایره با او چیز نمیکنم تا که واضح بشم ویدیو که واضح شدنه که ما صفات الله جل جل و ایمانداریم ایمان داریم بلا تمثیل ولا تشبیه ولا تعطیل ولا تعویل نه تعویل میکنیم نه تشبیه میکنیم نه تمثیل میکنیم, میکنیم. میکنیم. میکنیم. میکنیم. میکنیم. و نه هم تعطیل میکنیم بلکه میگیم که آنچه که الله جل جلوه صفات خدا در قرآن عظیم شان بیان کرده با کل از ای صفات ایمان داریم و آنچه را پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان کرده به او ایمان داریم و ما ایمان ما به قرآن و سنت است اینو گفتیم دگه از مسائل فلسفی که فلاسفه و ایگاپا گپ میزنن ما از این فلسفی که مثلا جوهر است و عرض هست و, و این صفات الله جل, جل و عین ذات و غیر ذات است ایگاپای فلسفی هست ما این ترک میکنیم به خاطر عزیزی که قرآن عظیم الشان عزیز قرآن عظیم یک گپ باید کل علما باید بفهمند کل دانشمندا باید بفهمند که ما شما بفامیم عقیده داشته باشیم که این عقیده اسلامی و عقیده قرآنی تنها بر تبیقی تحصیل کرده نیست تنها بر کسایی نیست که او مثلا دیپلاس است تنها بر کسایی نیست که لسانس است بلکه عقیده قرآنی برای یک جولی هم باید بیان جواب بفهمند برای یک جوالی وقتی که تشریح میکنی، اگر قرآن تشریح کنی، یک نفر بیسواد است، هیچ چیز نمیفهمد، جوالی است. یک نفر از بیچاره چوپان است. یک نفر از دیقان است. در زندگی خود چه علف بیتسر نخوانده اما از او در روز قیامت از ایمانش پرسان میشه نمیشه. پس موضوع بر از ایمان چه بگیم بگیم والا چوپان جان، بگه. بگیم والا صفات الله جلال جو نهایی زاده است، نا عین ذات صرف دوازده را کل شده شک انداختن در وجود خدا که شک کردی گفت خراب شد که <تصفح> <تصفح> <كه> شک کردی <تصفح> خرابش کردی تا صرفت وازده شک نداشت به وازده که تو آمدی بهش فلسفه را داخل کردی او نفامید که نفامید یک موضوع که نفامیدی شک میکنی که شک کردی خرابی میکنی اما اگر ذات الله جلاله جلاله و صفات الله جلاله و نامهای الله جلاله جل... مثل که در قرآن صنعت آمدن برای یک جوالی و لقد یا سرن القرآن لذکری فحلمی مددکر قرآن بسیار آسان و واضح بیان شده وقتی که واضح و آسان بیان شده قرآن همه چیز واضح بیان کرده آله مثلا میگه که برای یک چوبان برای یک جوالی پیشت ششتا دست میتیش برش میگه الله جلاله جلاله چی خصم بش ولم یولد و لم یکن له کفوان احد الله جل جلاله زوارت به پسر نداره یعنی ولادت نکرده کسی از الله پیدا نشده ولم یولد و خود الله جل جلهو از کسی پیدا نشده بنا نیازی به پدر نداره ولم لم یکن له کفوان احد به هیچ کس شریک الله جل جلاله نیست بنا ان خداوند برش میگه چوپان جان الله جل جلاله یک ذاتی ذات یگانه است نیاز ضرورتی به پدر و پسر به اولاد به یه چیزایی که ما انسان ها ضرورت داریم الله جلاله جلاله ضرورت نداره همه نگه این رخ فامیدم. فاهمی آسان است ما انسان هستم به اولاد ضرورت دارم ما انسان هستم به مادر و پدر ضرورت دارم. ما انسان هستم به شریک و همسر ضرورت دارم. من انسان هستم وقتی که دوکان جور میکنم شریک کار دارم کاتما در دا دوکانداری کار بکنه. من انسان هستم ضرورت دارم که شاگرد در دوکان خود بگیرم دوکانداری بکنم. ما انسان هستم قرآن شریف یاد گرفتیم ضرورت دارم که یک کسی گردان گردانم گوش بگیره. پس <تصفح> من هستم انسان که ضرورت دارم به شریک، به مثل به مادر، به پدر، به اولاد، به ایشیزه. اما الله جل جلاله خالق است و هیچ چیز ضرورت نداره. اینو میگه اگر تو برای یک انسان بی‌سواد که هیچ چیز نخونه بگی میفهم ام منم می اما اگر بخوی بگی که والا صفات عین ذات و غیر ذات است، به خاطر تو بر از تشریک. از این خاطر بسیاری کسایی که مرتاد شدن از مسیحیت، چرا مرتاد شدن از مسیحیت؟ چون عقیده مسیحیت, عقید مسیحیت اش جاهلش فلسفه داخل شده. میگه مسیحی ها میگن که یکی خدای پدر است یکی خدای پسر است یکی خدای روح القدس است باز یک جمع یک جمع یک مساوی؟ نه، باز کشش میگه نه نه نی نی چی میگه one plus one plus باز میگه یک جمع یک جمع یک مساوی با چی میشه؟ یک میشن یک شاگردش داشته میخصه میگه چی میگی؟ ها؟ بگو بگو بچه یک شوگه تو بشو و بگمتیم یک روپه کاکای داد یک غره مامای داد یک غره پاو موره داد مساوی شد با یک غره منو بگ غره و می چی میگید یکو داد یک داد پس ما قبول ندارم این حال بوس کشیش بس مک گپ نزن اینجا موضوع اه... چی هست باور کوی نمی قسم خلاص نه من قناعت کنم خلاص از چی میشن مرتاد میشن و از مسیحیت و از یک این حال در اسلام شده این باید در اسلام اگر امی کارهای فلسفی و گفتیم بالاخره ما هم خرابی کردیم در غیر تو اگر مطابق قرآن و سنت صفات الله جل جلاله رو بیان کردیم ان شاء الله چی میشه بعضی کساس بعضی کساس آیات قرآن غلط میفهمه مطابق اندیشه خود یک سوال است که همیشه برام میشه که میگه و نفخت فیه من روحی و نفخت فیه من روحی. اینه کسایی که اندیشه فلسفی دارن یا ای آیت مطابق مزاج خود دشریه میکنن و این غلط از کفر از بیرا... نارواز و یکی است که ما مطابق قرآن او را بشناسیم اونا چه خصم نظر دارن؟ اونا که نفخت و من روحی خداوند مطال گفته که ما در انسان از روح خود دماندم در اینج کسایی که فلسفه میگن و مسائل فلسفی رو مطرح میکنن، با تو فکر میگن که الاعیاذ بالله الله جل جلاله روح داشت از امیر روح خود یک درصدش بر برای انسان دمان یعنی از روح خداوند در وجود انسان چی جد؟ داخل شد. یگان تا این قسمی عقیده میکنن. شاگردش پرسان میکنن که خب روزی که آسمون تا اومده برش کدام تا گفته همین قسم کدام کس بش کرده که وانا و فیه روحی یعنی روح خداوند در وجود کیه؟ در وجود از انسان داخل شده شاگردش پرسان که خو خیلی وقتی که روح خداوند در وجود انسان است، بس انسانی انسان که در دو زخ میره یعنی که روح خداوند در دو زخ میره خرابی شد نشد هزبت بتر شد نشد دان استاد سبوازمان آنیسه سب آمد چطور کنیم استاد چی هست برما استاد منی قسم تشریح کرد او برادر ای نظریه ای قسم فلسفی تشتیه کردن ای غلط است خیلی چه قسم است؟ ما افتوم اول قایده نمبر یک نشت کده که که روح و جسد صفات مخلوق است و ما خالق بر روح و و جسد وصف کردن نمیتونیم خالق بر چی تصفیف کرده نمیتونیم؟ ما انسان هستم روح دارم ما انسان هستم جسد دارم پس این روح داشتن و جسد داشتن صفت کی است؟ مخلوق است ما به خالق به الله جلاله جل نه روح نسبت کرده میتنیم و نه جسم اگر بگوی که جسم یا روح داره الله اینجا باز چی شد تشبیه آمد بین مخلوق و خالق و این شرک هست خیوان فقطو من روحی چی مانا نفقطو من روحی ایچی مانا واضح هست این مفسیرین کرام میگن که اینجا نسبت دادن روح الله به انسان، روح انسان به الله، اینه روح را خداوند روح انسان به خود نسبت دادن، میگه اینه نسبت تشریفی میگن. نسبت تشریفی فامیدان شکهما که کلمش سخت است، لکن آسان است. مثلا مثال میگم این مسجد است. شما رفتین در قریتان یک اتاق کلان جور کردین یا یک بیلدیگ دارید دا این بیلدیگ یک اتاق جور کردید کل و طاقاس 500 اتاق داره میشه میولم یک اتاق مسجد جور کنیم وقتی گفتی اینی اتاق مسجد است میگه که این خانه خداست چی میگیم خدا به خانه نیاز داره ضرورت نزن پس چرا این اتاق تو خانه خدا گفتی مسجد خانه خدا گفتی میگه به خاطر ازی که اینمی چاردیوالی که ای, چاردی والی که ای عبادت میشه درس خوانده میشه نماز خوانده میشه ای امی اتاق عزت پیدا کنه اینو نسبت دادیم به کی؟ بنا اینی مسجد ده اینی اتاق است. اگرچه سنگ است، گل است، چوب از کل چیز است. ای رو گفتیم خانه خدا هست. ای از کل خانهایی که در این قريه از کل که ای بائذت شد نشد. اینو شرافت دادیم، ندادیم. در حالی که خداوند به خانه نیاز ندارند. انار ای خانه چی است؟ خانه عبادت خداست. از این ای خانه خداست. عزت پیدا کرد نکرد پیدا به این نسبت دادن اینمی خانه به خداوند. این نسبت نسبت چی میگن نسبت تشریف دادن عزت دادن کرامت دادن به اینمی خانه شد نا الله شتر شطور خداون آن دیگه شطورا شطور خدا نیست یک شطور سالی علیه السلام شطور خدا بود میگه در قرآن گفت که هاویه ناقت الله این شتر خدا هست گفت چونه گیره؟ گفت بخاطر از مجرده گفت که شطور خدا نسبت داده شد شطور به خداوند دیگه شتر را کار ده بگی کن مشکل نداری اما سونازی شطور بد سعی کردن نمیتونی موجزه هست انال روح انسان خداوند به خود نسبت داد از این ای خدا شد شطر شطر خدا شد روح ماوتو روح خداوند شد یعنی روح ماوتو رو عزت داد اگر تو یک گوسفند علال میکنی روحش قبض میکنی علال کردی رفتی 5000 هزار شش هزار اگر داره گسفند علال کردی هیچ مشکل نیست اما یک انسان یک انسان روحش گرفتن مثل که کل دنیا رو کشته باشی چون روحی ازی انسان عزت داره شرف داره این خداون به خود نسبت داره. اگر یک نفر چل تا خانه را در اینجا خراب کنه یک طرف است یک داره مزید خراب کنه یک طرف بنا ان و نفخت و فیهی من روحی بخاطر عزیز که روح انسان مخلوق است ای ار مخلوق که خداوند به خود نسبت داد خاطر چی نسبت می دوشت خاطر شرافت و عزت و کرامت بنا بیت الله شریف یک مخلوق از سنگ از چوب است خداوند وقت، وقتی نزبه که به خود نسبت که بیت الله است بنا ان بیت الله شریف عزت پیدا کرد سطورا که به خود نسبت به الله عزت پیدا کرد حضرت محمد صاحب من بنده است گفت بنده خدا عبدالله الله اینجا برای ازی یک عزت خاصی داده شد برای روح ما دور روح الله بنا آن برای ازی یک عزت داده شد از خاطر ما روح جسد است یا مشکل است من میگم فقط بناأن قاعده اول که ما روح و جسد مخلوق هستند به خداوند نسبت نمیتیم میگیم که خداوند متعال از روح و جسد پاک است منزه از احتیاج نداره اما اگر کدام مخلوق خدا الله جل جلاله به خود نسبت میداد بنا این نسبت نسبت چی تشریف دادن عزت دادن کرامت بخشیدن است بناأن روح ما که خداوند برای خود نسبت داده به خاطر که روح یک انسان چیست؟ عزت داره شرافت داره کرامت داره نسبت به روح یک حیوان دیگر انشاءالله فاهمیدین این موضوعه اینالکه فاهمیدین سبحانه را بکره بلذتی امای صفون و سلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین اگه کدام سوال برتان باشه بفرماین